فیلم. به همین سادگی نویسنده رضا میرکریمی کریمی شادمهر راستین کارگردان رضا میرکریمی تهیه کننده حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بازیگران هنگامه قاضیانی دستگیره در دادم درست کردن درو ببن مهران کاشانی آقا شما از این منو نسرین همدانی فادو برای محسن حسینی موسیقی محمد رضا علیقلی خوشتبوم در کنار چهار دیش ماهواره و ملافه و لباس های روی بند و کولری قدیمی با چادر مشک گلدار ایستاده و به دور دست نگاه میکنه بخار از لوله بخاری خارج میشه زنی به اون نزدیک میشه خانوم خانوم زن که عبروهای پاریم داره رو درست میانه سلام علیکم سلام خانم ببخشت من موزایم شدم و مالافه مال شما بله میشه خواهش کنم یکم اینو بکشیدشون طرفتر آخه این یکم نویز دار نگم مالا این مالافه شما بود ببخشت شما این طبقه دوبامیه هستی؟ نه من طبقه ثبام هم وای راست میگی های. چقدر از دیدنتون خوشحالم ملافر رو کنه همزم مرسی دو دخشید این اسق و بستاسی ایما تو راه رو بله ما. مانو شما باید. بله, بله. امشب میگم عباس حتما میاد اینا رو جمع جور کنه بیچاره دیشتر اومد اینا علم کرد دست تنها بود گفت جاش خوبه نمیدونست پشت بند رخت شما هم هست دیگه به هر حال ببخشید نداره نهده موازم پلان باش آ زن چادری سبد لباس رو بر و به اتفاق خانم همسایه که آبستنم هست پشت بومو ترک میکنن و از پله ها پایین میرن کجا؟ بیا با آسانسور بینیم پله برات خوب نیست نه آسانسور میدونی که پله راحت ترم میترسی؟ نه هر دو درون آسانسور هستن زن چادری دکمه آسانسور رو میزن آسانسور راه زن همسایه انگار کمی ترسید آسانسور نیسته و زن همسایه کمی جا میخوره کنون میخواد به روی خودشن زن چادری به اون نگاه میکن رسیده. دست زن همسایه رو میگیره و از آسانسور بیرون میان و از هم جدا میشن ببخشید که من شمارم به زحمت انداختم خواهش به باشه پس بعد منم یک اتری آکیوش ازت میگیرم باشه هفته زن چادری کلیک میندازه و در آپارتمان رو باز میکنه و وارد میشه. زن در اون میبنده. دمپایی های بیرون رو در میاره دمپایی رو فرشی لباس گلدارش از زیر چادرش پیداست. چادرشو در میاره و روی جالباسی کنار آینه آابزون میکنه زن نگاهی به خونه میکنه میره و سبد لباسی رو در گوشه میندازه مینداه. روسریش رو باز میکنه پشت گردنش صرف میکنه حالا وارد آشپزخونه میشه همه جا مرتبه الا میز وسط آشپس یه بطری و چند لیوان سبد نون و چیزایی دیگه سراغ کابینت میره یه غوری در میره سراغ تلفن میره و پیغامگی رو روشن میره الو تاهره جان دیروز زنگ زده بودی من خونه نبودم بابات میگفت میخواد چند روز بیای پیش ما نگران شدم یعنی خوشحال شدم پس مدرسه بچه چی میشه میتونی اجازه شنو بگیری خ میتونه باهاش بیا بشه قبل بیاایی زنگ به من بزن از نگران در خدا در حین شنیدن پیغام چای و هل توی قوری ریخته و اونو زیر شیر سماور گذاشته تا از آب جوش پر بشه در دیگه کابینت رو باز میکنه قندون و دوتا فنجون در میاره یه سینی بر برمیداره و دو فنجون و قندون رو توی اون قوری پر شد شیر سآور رو میبرد در قوری رو غوری قوری رو روی سما برمزن سراغ کشوی میره و اونو باز میکن کوچیک آبی آبیرنگی بیرون میاره کیسه هم در میاره و توی زرف پولکی میگیزه یک دوتاش روی کابینت میاره کیسه پولکی رو توی کشو نزن یه نگاهی میگنه سراغ تلفن میره دفترچهی رو ورق میزنه و ای رو میگیره کمی مستره به نظر میرسه تلویزیون روشنه و زن مشغول جمع کردن میز میشه و تلفن رو روی شماره گیری خود کار میذاره. حوله نارنجی رو روی دوشش میندازه. پیژلسی‌ها رو توی ظرف شویی میذاره. به تلویزیون نزدیک میشه. یک روحانی در تلویزیون صحبت میکنه. زن میشینه و کومود زیر تلویزیون رو باز میکنه. استیشن جمع شده رو از روی زمین بر میدار و توی کمود میزن می این نگاهی هم به تلویزیون داره و به حرفا توجه کن در کمود رو میبرن همینطور که حواسش به تلویزیونه کوسن رو از روی زمین بر میدار کتابارم از روی تلویزیون بر میدار زن وارد اتاق میشه لحافی رو توی چمدون رو میزن پولیورش رو هم در میاره تا می کنه و توی چمدون رو میزن روی تخت نشسته در چمدون می نگاه گذرا به عکس عروسیش که به دیواره می دازه علو سلام اگه زحمتی نیست می خواستم با حاج آقا صحبت کنم آدمی که خودش شناخ نداره خیلی وقتا اصلا نمیتونه طرف مقابل شناخ داشته باشن تو از چه زندگی یک زندگی ساده، یک زندگی خوب. چه هستی؟ ای؟ آیا تو عصبانی میشی مثل اون قصه خالوسوسکه؟ تو بالا با چی میذنی؟ آره، این به همین سادگی اینطوری از از داشت اینطوری. استخاره داشتم. استخاره شاید مدل ماشین مهمتر باشه از نهرا، آدرس خونه مهمتر باشه از نهرا. متعجب به سمت صدا سر بر می‌گردونه. دمه در میره و از چشمی در نگاه می‌کنه. سلام سلام ببخشید. که شما همسایه ها نبودین نمیدونم من باید نه بود. زن چندین بشقا و یک سبد رو ده ده ده. بزنه همسایه میده. دست ده جو. جو. اگه میشه یه دو دست بیسکوپلوفریام ببر. باشه نه. اگه توریه چند دست لیوان هم به من بدید. لیوان داره. دو جوون تشت به دست از پله پایین میان. چند تا براتون میذارم. اصن خومیوار. سر صدا نکنید. بریدونو میگواهر ور دارین میگیم بالا. می بینی تای تا خانم جون؟ شانسی ندارم. همین حالا که ما عروسی این اینا اسباب کشی دارن. تو رو خدا. گفتن تا شب جمع میکنن دخترم رو, رو صبح دیدم، دختر بدی نیست. خیالت راحت باش. خدا اله. تای جون. برم که هزار تا کار دارم. تا خانم خود خودتم یه تو که پا بیا دارم ق شک زن همسای میره و در رو می بنده تنها مونده رو سریشو میکنه در کابینتی رو باز میکنه کیسه ای رو در میاره که چند دیسه کشیده توی اون کیسه دیگه دیس رو از توی کیسه در میاره و گرد اونو رو با پارچه پاک میکنه سراغ کابینت دیگه میره و جعبه لیوانا رو در میاره جعبهی دیگه هنوز مسترب و در فکره دستی به صورتش میکشه از روی یخچال و از درون ظرفی یک ورق قرص برمیده قرصی در میاره لیوانی رو از شیر تا نصفه آب میکنه شیر رو میبنده قرص رو میخوره تاهره دیست در دست به همراه جعبهی لیوانا به خونه همسایه اومده زنها در حال تدارک عروسی عروسیه، تاهره دیس و لیوانها رو به زن همسایه می‌ده. حالا من دخترم است. حالا من دخترم است. دخترم صفر <تصفح> همینجا می‌وزنیم؟ تو سه‌ی می‌مو هده صحبت صفر افتاده گردنشو می‌گنیم وسط سال و موشه ببینیم؟ چه می‌دونم برای عکس و فیلم و اینجور چیزا؟ من کساب بردم بهشت خواهیم آینه رو کجو بذارم؟ نمی‌دونم ره‌ل قرآن رو بذاریم وصف آینش هم دونم بذاریم کنارشو بچه‌ها آینه رو بذاریم کنار قرآنو با رحلش بذاریم بستد سلام سلام علیکم بسرم نبرای صفره عقدم داختیم یکی از اتاق. اینجا رو هم راحته بودن در صبحالتون هم باشته بود از صبحی گفتم تایره رو صدا بچه ها قرمونه دستتون جمع کنیم بریم اتاق خوچی زنی به همراه یکی دو نفر مشغول چیدن صفره عقد تلویزیون ورزش رو صبحگاهی پخش میکنه تا هر به زنگ تلفن روی موبایل نشسته و دست زیر چانه به تلویزیون خیلی شد. تو اینجا دست گلی ه؟ خواستم بیام امروز حتما بیه. آخرین جلسه. صدای تلویزیون رو قطع میکنه. بهترین کاری که لصیه بچه ها رو انتخاب میکنیم برای چه؟ یه وقت تنبلی نکنی نکنیم. تو اینجا. بیا بعدان جای گلگی نمونه. دیر نیایی. مثل هفته قبل نشه من تازه تاهره نمیدونه چی کار کنه دستی به پیشونیش میکشه تاهره رو توی سبد لباس میریزه از پرده دار رد میشه لباس دیگه از کف اتاق بر و توی سبد میندازه جورابی رو از روی میزی که آینه و شمدون و دو قاب عکس بچهش روش قرار داره برمیداره بومی کنه بله باید بره توی سبد دستی روی میز میکشه تا گرد و غبارش پاک بشه با حسرت به عکس نگاه میکنه لباسا رو توی ماشین لباس روی یکی از لباسا رو در دست میگیره انگار یاد چیزی افتاده به حرف میبارید در کابینتی رو باز میکنه دفتری بر میداره دفتر رو روی میز وسط هاشپس خونه میذاره و باز میکنه. خودکار لای دفتر بر میداره. به صفحه میرسه که روی اون گلی نقاشی شده و در صفحه مقابل دو برچسب گل دیده میشه انگار همه صفحاتش گل داره. تون دو تون چیزی می نمیزه. روز اول آشناییمون خیلی عصبی کلمه خیلی رو خط میزنه مکسی میکنه و نگاهی چه... به لوستر اتاق میدازه را... لباس های... زرف پود لباسشوی رو از توی کابینت در های... سفید یک دفعه خودکار از دستش میفته و زیر کابینت ها میری میشینه سعی میکنه با یه دست خودکار رو برداره خودکار خیلی دور رفته دستش نمیرسه اما به تلاشش ادامه میده نه پیدا نشد خسته روی دوزانو میشینه و نفسی میگیره کف آشپزخونه میشینه باره گریان در ظرف پو رو باز میکنه در مخزن مخصوص ماشین لباس کمی پودر میریزی پوود رو پخش میکنه و مغزن رو میرمند در ماشین رو هم میکنه روشنش میکنه دو استکان از تو جا ظرففی بعد اما لحظه می صورتش رو با رو سرریش میپوشونه و زار زار گریه میکنه به حق افتاده تاهره پشت میز نشسته با انگشتانش بی هدف دفتر شعرش رو برم ماشین لباس شویم هنوز کار می‌کنه که تاهره میره و گوشی آیفون رو برمیده بله سلام خانم مهندس سلام هستر آقا دنبال نقشه کدوم نقشه ها مهندس زنگ نه بباسه خانم مهندس ها امیر که به من زنگ نزد مهندس گفت نقشه تو کتاب خانه حالا بالا. در رو باز میکنم سراغ گوشی سیار میره توی کتاب رو میگرده نه نیست تلفن رو روی شماره گیری خودکار میذاره و چند نقشه رو بررسی میکنه اونا هم نیست اومدن گره روسریشو از پشت گردن باز میکنه و از جلو می‌بنده و سمت در میره به طرف گوشی میره و اونو بر میداره الو سلام داشتم تو رو گوشی گوشی رو روی جعبه کلیدا میذاره رو محکم میکنه و گوشی رو بر و در رو باز میکنه سلام از پر با بپرمون تو آی در راه رو رفت آمد زیادی هست. با علامت دست ای از شخص تازه وارد وقت میگیره تا با امیر همسرش صحبت کنه. آخه من که نمیدونم تو اون‌ها رو کجا گذاشتی. بلنگ گوشی رو روشن میکن یه دقیقه گوشی. یه کاری کار. میگم یه دقیقه گوشی، کمضه بالای کتابخونه رو ببینم. شاید اونجا باشه. روی صندلی بود. ببین همونجاست، همونجاست. اونجایی دارم هم گذاشتم زیر نقشا. اینجا که فقط نقشه است. چی؟ میگم اینجا که فقط نقشه از هر چی تو کموده نقشه هر چی از همه رو بده داشت. همه رو از سندلی پایین میده چند نقشه به پایین یفته امیر قط کرده تاهره با یه بغل نقشه دم در میاد تا اونا رو به کارگر امیر بده یه که سرش بالا جا کفش می‌ره خودمون برش میده. روی جا کفش میده. یکی دو تا از اونها میاد. تمام استوجا. کارگر نقشه ها رو بغل میکنه و میر داش میو داره لوله طاهره با نوت لیله رو از زیر کابینت بیرون میکشه. از فکری که کرده راضی. خودکارو زیر شیر آب می‌شور. با حوله خشکش میکنه و سراغ دفتر شعر میره و سری شروع به نوشتن میکنه. قوری رو از روی سماور میداره. در یه فنجون تا نصف چای می‌ریزه. در نور پنجره رنگش رو چک میکنه ولی انگار چیزی توجهش رو جلب کرده. قوری رو روی سماور می‌ذاره. چای تو قوری رو برمیگردونه. پرده آشپزخونه رو به آرومی کنار می‌زنه. در ساختمان روبرو رو مرد موسنی رو با پیرهن قرمز میبینه که دستمال بر سر جارو در یک دست و خاکنداز در دست دیگرش بالکن خونه رو جارو میکنه مرد که کارش تموم شده خاکنداز رو به دیوار میزنه و آشقالا رو پایین میلزه تاهره از این کار مرد اصلا خوشش نیومده تاهره یادداشتی رو که نوشته روی یخچال با یک عروسک آهن روبایی میچسبونه روی یادداشت چیزی رو خط می‌زنه و عدد یک رو می‌نویسه. قابلمه رو روی اجاق گاز می‌ذاره. سماور رو خاموش می‌کنه. قوری رو برمی‌داره، خیلی داغه. اما سریع اون توی سینی که دوتا فنجون و یک قندون هست می‌ذاره. ظرف پولکی رو هم توی سینی می‌ذاره. دوتا تا بشقاب و قاشق چنگال هم روی میز که آماده پذیرایی می‌ذاره. طاهره سینی چای در دست با چادر مشکی گلگلیش در خونه همسایه اومده. در نیمه بازه در رو باز میکنه و وارد میشه زن همسایه دستشویه منم هم تاهره همسای روبرویتون وای ببستید من جان یه خوبتون میکسه اشکال نداره برای چای چایی آوردم میذارم اینجا شما تا یک ساعت دیگه خونه ای؟ آره اونوز همسایی ها خیلی گرفتارن خواستم ببینم اگه اشکال نداره کلید خونه رو بزرم پیش شما که دخترم پشت در نمونه اه؟ دخترم داری؟ چند سالشه؟ هل سالشه، اسمش آرزوه چی شو؟ زدم به تخته اصلا بدنیم یادی دخترم این طور داشته باشت مرنم پنج مالگی این طور بودی؟ انشالله فاطمه کرشی همه این حال و هواهات از بین میره. با اجازه خدافس. سینی رو روی مره اوپن آش پس خونه کنار گودول گل و قاب عکس ها میذاره. طبق چارومی عروسی داره. من دیگه مواد ببرم. خدا. کلیو از کفش در میاره و توی سینی میذاره. طاهر کلافه شده. درو میبنده و میری. طاهر در آسانسور در افکار خودش غرقه. آسانسور پایین رسید. باز میشه و یک خانواده پر جمعیت 5 6 نفری آماده سوار شدند. تاهره دکمه آسانسور رو برای اونها می در میبندید. می؟ خانم رو بهشت خانم هستین؟ بله واژاتو توی پارکینگ میره که در حال آماده سازی اونجا برای عروسی هستن. میز لیوانا، گلدونای گل، میز ها جواب های شیرینی. بله سلام روی پل برقیه یه پل آبره که از اون بالا می. به انتهای پل میرسه. پیاده میشه و پل ارز اتوبان رو تیم از بالای پل نگاهی به ماشین ها و اوتوبان میدازه وارد آموزشگاهی هنری میشه از کنار نقراشی دیواری قدیمی رد میشه و به دری میرسه در باز میکنه وارد محبتی میشه که تعدادی دختر مشغول نقاشی روی بوم هستن از کنار اونا و یکی دو تا پسر جوان میگذره به حیات پردرخت و کلاس شعر میرسه آروم در باز بزنگه معلمی که مشغول صحبت با یکی از هنرجوها صدا میکنه و خودش از کلاس فاصله میگیره و کنار درختی می دفر دفتر از کیفش در در پس زمینه دو دختر روی یک مجسمه فلزی انتزاعی کار میکنه. خانم دسفودی میگه. خانم دو دوست، خانم سلام. من خواستم بگم که امروز نمیتونم بیام سر کلاس. ناقصه هنوز تکمیلش نکردم یه چند روزی فرصت میخوام که بتونم کاملش کنم تو هردت خوبی؟ نه نه شما که زنی زدی من گفتم که بیان بگم که اگر یه خورده دلم گرفته سلام اون این نیست سلام دوستان. دفتر رو از تاهره میگیر خانه خیلی روشن است و چلچراخ به شکوه و خاموش و در انتظار شهر شاید دیده شد امشت خیلی خوب شروعش گردید ولی ناقصه قشنگه مثل خودت <تصفح> خواهر <خالد. تصفح> <تصفح> معلم میخوام. روز آشنایی من اونقدر برف میبارید که تمام لباسم سکت شد حتی در اتاق خوابی که دلم هم بردید فاق و است چرا ادامه ندادیش میخواستم بگم اگه میشه اسم من جز اونایی باشه که کارشون برای چاپ میشه تاهره سرشو پایین میلزه اسمه یا شعره تاهره جوابی نداره پرندهی که روی درخت نشسته روی شونهی خانم دسفولی ام. کار خوابی پرنده ها <تصفح> <تصفح> <تصفح> شاکرده توی اشکالی نداره باره اولشون نمیده برشکم برشکم تاهره با دستمالی اونو پاک میکنه کن. اینقدر اینجا رو دوستان که زیس تو نام نمیتونم چراد کنم در راه بازگشت از همون پل رد میشه از پله برقی پایین میاد. ق زنی مشغول تمیز کردن زمینه و زمینات تین میکشه این ک که این یه کمکه که پنیره ببخشید این این چیه آقا این گردوی نیست عرض کردم یک خانم گردوی نداری ببخشید خانم خانش میکنم خیلی خوب پس لطفاید یکیه که خامه ای با نسکافه بود بله شما لطف کنید صندوق فروشنده تک کاغذی به تاهره میده خانم ببخش بود چیزی نوشته شه تاهره به طرف صندوق میره نیسته جوابی نداره نه نه میخواد م زن رفتگر رو صدا می کنه. زن از کارش دست می کشه، دستکشاش رو در میاره و پشت صندوق میره. تاهره با یک تراول هزار تومانی در دست منتظر پرداخت زن هم مشغول حساب کتاب آسانسور به طبقه 4 میرسه. درش باز میشه و تاهره با جعبه کیکی که خریده از اون پیاده میشه. درون میبنده و دمه در خونهشون میره آرزو علی کسی خونه نیست لحظه برمی کرده فکری میکنه جا کفشی رو باز میکنه جبه که اونجا میذاره و به طرف خونه همسایه میره صدای موسیقی طبقه بالا توجهش رو به طبقه بالا میره و وارد خونه میشه بخش سلام. شبمون من مادر فاطمه چیه؟ داره ما رو نمی‌شه. ندیدین؟ آره همین جا. مشغل شدم، دوازه. آرزو مامانته. سلام، سلام تو کی میدی؟ چند ساعته. به تو چرا عوض نکردین؟ کیلو دوستت. کیلویی که من دادم دست خانمه. بخشه ماچ. هاي کیو بگیر. علی کجاست؟ علی محمد رفته بالاپشتو. برای کیلودی بگیر، سفارش بدم. دستشو خانم از کنار روسریش دوشواری به تاهره نشون میده. پس چی؟ رو هر وقت که نگاهی به خونه تاهره در رو باز میکنه و وارد خونه خودشون میشه کفشاشو در میاره چادرش هم از رو سرش بر میداره در نیمه باز مونده وارد اتاق خال میشه قفل چمدونو میبنده و اونو از روی تخت بر میداره و در گوشه میذاره. لباساشو عوض میکنه در آشپزخونه با کبریت اجاغگاز روشن میکنه قابلمه ای روی اجاغه یا داشته روی یخچالو بر داره و مچاله شده. ظاهرا اونو برای همسرش نوشته بوده که هنوز به خونه نرسیده. پارچه آبی از یخچال برمی آرزو با دو دوستش وارد خونه میشه. سلام کویر تقبیلا می دید تمام عمرو برای تمام این سلام خانم. سلام خانم. تاهره از این کار آرزو اصلا راضی نیست در رو باز بذار علی میخواید بیاد دخترها به طرف اتاق آرزو میرن تاهره پنجره آشپسخونه رو باز میکنه و علی علی تاهره دم اتاق آرزو میرن آرزو آرزو ماما تو بله، kein قایبه حسابو خود. الان نه کار داره. اینا کیم که میخوام برم. مشتاق. بی لباس پرووووو کنیم. خب حساد یخ کرد که خب کار داریم دیگه. طاهر ناچار میپذیره و آرزو درو در میبنده. <تصفح> طاهره لبخنده کوچیکی هم زد. طاهره وارد حال میشه که علی با جبهه در دست و کولهی بر پشت وارد خونه میشه. مراقبه شما هستم میره گره من علی کفشاشو در میاره و کلاه کشی قرمزشو هم از سرش بر علی عینک به چشم داره سلام سلام این جوجه است بسی محمده میدونم جوجه است دست تو چی کار میکنه محمده نه ارسی داشتن گوتش هر این که منم ارمزش گرفتم گوتش تو ارسی زیره لسفاه لح میشه این کارا چیه میکنی؟ مگه خونه جایی این چیزاست؟ اینو که اصلا بالم انتازه پرواز هم نمی کنن علی به اتاق خودش میره و دره میبند خونه بو میگیره <تصفيق> علی دره باز میره پیش هم بونه میگیره هم همشون رو دیشتر توی همون شسته بیا غذا رو بخور غذا تو گرم کردم با تو هم نها چه داری؟ زرشکولو با ما سینم سینه هم برات بذاشتم من زرشکولو شدش ندارم زرش کاشم برات جدا میکنه بابا جا من نمیخوام نمیخوای دست از سر من برداری تاهره مونده که جواب این نیم وجوبی رو چی بده تاهره زرش بلو رو توی بشقاب میذاره یک تیکه ران مرغ هم روی اون میذاره رو روی سر سماور میذاره تا گرم بشه در قابرمر میبنده و اونو رو توی یخچال میذاره یهو چیزی یادش میاد دم در از چشمه نگاه میکنه که کسی توی راه رو نباشه. در رو باز میکنه و جعبه کیکو از توی جا کفشی بر می داره و بر می توی خونه. صدای موسیقی اتاق آرزو توجهش رو جرب کرد. جعبه بده دست به اتاق آرزو میرسه. بچه ها خودشونو آراسته کردن و با لباس های مهمونی با آهنگ حرکاتی انجام میدن. برفشادی میزنن و خوشحالن و در عالم خودشون تاهره از لای در آروم نگاه میکنه که آرزو همراه با خاننده لب میزنه و عدای خاننده ها رو درگیره تاهره لبخنده میزنه آرزو کفشای پاشن بلند تاهره رو هم پوشیده تاهره آروم در میبنده و میره جعبه که توی یخچا جا میده سراخ بشقا به روی سماور میده بر میداره و قاشقیه از زرش پلو میخوره غذا از گروش پایین نمیده از پنجره مرد محسن همسایه رو میبینه که روی بالکن خودش نشسته و آفتاب گرفته علی در یخچا رو باز میکنه تاهره پشت میز میشینه چیا جوجه ها دیگه آقا شیرینی هم که داری؟ مال همسایه است علی در یخچالو میبنده دست دست نذار اصلا به جوجام چی بدم یه خورده از این برات میریزم بهشون بده آخه من نمیفهمم کیگر سی ما چی چیکار میکنه به موقعش بس کیک میده تاهره کمی از غذای خودش در یک پیش دستی میریزه هم از اون بشاشش موقع ما گفتون میخوای بخوری جوجه ها بخورم دیگه خب درست نه اونا جو جملی مرگ دیگه موقعی نمیتونه مرغ بخوره خب بیا یکم یک سبزی هم براشون میساری نگه سبزی هم میخورم آره میخورم همین؟ زیادم هست بسشونه پس خودت که غذا میخوری؟ گفتم که من از اون غذا نمیخورم همه زرشکی شده اینقدر از نعمتهای خدا ایراد نگه پس گناه داره ها من خدا رو علی به اتاق خودش میره. طاهره لبخندی میزنه. تاهره مشغول سرخ کردن دو تا کتلتو گاوجه است. علی پلی استیشن بازی میکنه. تاهره غذای علی رو آماده میکنه. دو تیکه گوجه به جای چش، کتلت‌ها جای دما. دهن با خیارشور درست شده و دو تیک تره جای آب. تاهره اونا رو با یه ظرف سوس و یه لیوان آب در یک سینی برای علی میاره علی هدفون روی گوششه تاهره هدفون رو کنار میزنه و علی آقا برات کتفت رودم گوجو و خیارشورش هم جداست پیاسکه نداره دوباره هدفون رو کنار میزن نه نداره درزن برد نیست شما یه استراحتی هم به چشات بدیا مامان به بازی علی کنست نگاهی با. به خودش نمیدونه چی بگی چشمش به جوجا میفته که یکی از اونا کمی بیحال اونو نوازش بگی تاهره چادر برسر به همراه علیه توی اتوبوس شرکت واحد در قسمت زنانه نشسته میشه مایی من که با تو کار ندارد میرم تو که تا آموزش تو علی سرویسی؟ از چرا امشب اتوبوس نگه می و چند نفر پیاده و سوار میشه شه. <تصفيق> و با آجان اوتوبوس راه بود باشه بودم تنها خب آره تنهای تنهای تا دیگه بزرگ شد فلای چی؟ فلای میتون که که شد علی میخواد چیزی بگه، اما ساکت میمونه تاهره علی رو, رو روونه اون طرف خیابون میکنه که کلاس بره ماشینی از کنار علی رد میشه و تاهره کمی میترسه اما اتفاقی نمیفته علی به اون طرف رسیده از دور با اشاره به مامانش میگه تو برو من میرم تاهره که خیالش راحت شده میره اما باز هم نگاهی میکنه که مطمئن بشه علی وارد آموزشگاه شده تاهره در پیاده روی شلوغ راه تاهره در کنار یک کلیدساز حالا لطفا هر کدوم شیرا ان گذنه کلیدام میگن رنگاش با همو پر کن تاهره در پیاده روی دیگه راه میره و یک لباس فروشی میرسه از پشت شیشه نگاه میکنه زن فروشنده مشغول کار زن ناگهان تاهره رو می‌بینی. اون رو می‌شراسه. هر دو به هم می‌خندن. زن فروشنده به تاهره اشاره می‌کنه که بیاد داخل و تاهره میره. تاهره توی مغازه با فروشنده نشستن و آب پورتغال می‌خورن. خبت تو چون آقا شغل از اینجا با اونجا چش کار داری کفاشی آقا فایده نجد کفاشی فایده نداشت اینجا همه راسته لباسم گفتم بوتیک بزنم تاهره کفششو نشونه دوستش میده اینتا یاد چی میندازه؟ هنوزی داری آره چقدر جنس خوبه دادم ببین نو نمونده خود شلوقش نکن هیچ ربطه به جنس کفشتو نداره منم که جایی ندارم برم کسی هم که جایی نمیره کفشش نو مونه آخه دل هم برای تو بی از همسایی ها چه خبر؟ فرد عرسی منوه دروخ میگی؟ دختر بهجت؟ که خیلی بچه شست حیوانی عطبخت همه سراغ ها تو چرا نمیه اون طرف ها؟ بیلی تو رو خدا، تازه درم از دستش می نفس راحت میکشن بیام اونجا میخوان هی بگن حالا باستی جدا شدی تخصیر تو بود تخصیر و بود تخصیر عمد بود حسنه داره گروه باباشون از خودت بگو کلاس نقاشی هنوز میری نه دوست تاهره به شکم تاهره دستون زمان بده اصازی هم برکردی آره کلاس شعر میرم شعر؟ دوست تاهره لباسهایی رو که تا کرده بر میداره تا توی قفصه بذاره بار. دختره با بابا بیشتر جوره بالا سخت نیست؟ نه مامان بهران بهتر از من ازش نگه داری. مردی با سبیل بلند و کلاهی بر سر وارد مغازه علیم. میشه بفرمایید خیلی ببخشید اون پیراهن زنانه قیمت شنده؟ اون سرفان سبز رو میگی؟ بله این تلفن سبز قیمتش چن بود؟ از تاهره میپرسه. لحظه ای می میمونه. یه نگاه به مشتری میکنه و با شیطنت میگه ببخشین آقا ما اینجا هر دمون کاراگری، آقامون نیست شنبه میاد. میخوای شما مگه زحمتی نیست شنبه بیاین از خودش بپرسی مرد عصبی اما چیزی نمیگه و خارج میشه. خداحافظ. سلام برسونید. دوست تاهره پاکت آب میوه رو آقا میخواست برای ایل جنگ که دو <تصفيق> بابت میگه قلطی کرد میخواست افتادش داره بری زمارا نه نه بست نه بست امیره بابا ها چطورن خوبه؟ خوبه من هم دارم طوری شده تاره باز هم مشغول جمع کردن <تصفيق> لباس ها میشه دست تاهره رو میبره آره خوبه خوبه خوب تاهره باز کمی آب میوه میخواه تاهره در پیاده رو راه میره تا به یک لباس فروشی میرسه و وارد میشه تاهره شلوار توسی رو بر میدار و نگاهی میکنه سر جاش کت شلواری کرم رنگ بر میدار نگاهی به عکس روی دیوار میکنه و با شلوار توی دستش مقایسه میکنه سلام خانم سلام خیلی خوش مدید تاهره سر به زیر میگذار این باید سفا باید کفتیم با اینا خرید کرد؟ بله ایز هم حوال هم کاملا درسته مرسی مرسی ماما خوامی دیدی؟ تایرین <تصفح> گیپ که بخوام اگر کورچه س... شلوار رسمی یا مجلسی مدنه نظرتون هست؟ این قسمت هستش؟ کورچه شلوار اسپورت هم اون قسمت هستش؟ چه جسارتاً سایز 48 مدنه نظرتون هست؟ یا 50؟ چی سای <تصفح> <تصفح> تاهره به یک تلفن عمومی میرسه که کارگری مشغول صحبته. آره که آره است. آره کارگر نگاهی به تاهره میندازه و. آره, آره. وقت ده ده ده. تاهره عجله ده. ده. نگاهی به ساعتش میکنه خود زنی اما مرد همچنان داره صحبت رو تاهره منصرف میشه و به طرف آبربانکی میره نفر قبل قبضش رو جا گذاشت آقا قبضتون دیر مردی کنار دست تاهره میاد. تاهره نگاهی به تلفن عمومی میکنه چرای میری شد؟ کارت همو خورد باید رمزش برد باشه خانم کامپیوتریه هجه بلد نباشی میخوره کارت تو تاهره ناراحت به طرف تلفن عمومه اون کارگر هنوز داره حرف دا میزنه. دا تاهره رو که میبینه روبر میگرد کارگر <تصفيق> بوشی و میزه رو میده کارتش رو جا گذاشت اما تاهره اونو بهش نمیده اثر برش میده رو و میندزه دور بله تاهره جا خورده سلام خون بار منم محمد بور کازمی اے ثائر خان مشناختم با خوبی چطوری خانوم از بینو زنگ میزنی من موبایل امیر رو گرفته بودن ڈائلر کرده رو شرکت؟ نه، فعلاں گوشیشون دست منه من سرگیجو جلسه پرداخت چه کردم وقت ناهاره میتونم باهاش صحبت کنم همه تو جلسن مثلا ناهارم با این گروه خارج قرار دارم برن یه جور درست حسابیم خدا کنه آبروزی نشون قدر کرده آها شخص چه میتونم باهاش صحبت کنم باید کار واجبی گوشیو بدم بهش. نه نه نمیخواد لازم نیست. سفری آرزو هم رنگ داد نشد بابا شعر بزنه. آرزو؟ اول چیکار می‌کنی اصلاً آقا من چیکار داشت؟ چیکار داش؟ خودتش خرده در خون. یه دفالم بکشوم. کیریه مش دست صبح چلوم. یوف ندارم. به آرزو هم بگین رفتم تو اینترنت دیدم تا آخر هفته هوا خوبه فقط سرد میشه. برف هم نمیاد که بره اول. اما بعضی شک بارونی براش بذارید. آرزو از بارونی خوشش نمیاد خان برد باری کاری نداریم فعلا خداحافظ جاهره دوباره توی لباس فروشیه کدوم یکی از پیرانا مدنظرتون شو همین گل بغی لباس بود اوراکشن بشه جسارت ما بودیم بودیم کوچه راه نظرتون بود میتونن براتون بفرستن نه آقا پاش چی میشه نه علی فکر می کنم اوراکشن بشه خاله کلا رو به فروشنده میری کیسهی لباسی رو از فروشنده میگیره و میری تاهره منتظر علیه علی رو از دور میبین علی هم مادرشو میبینه و به طرفش میاد. هی هلو علی علی محل نمیذار و به راه خودش داره شده تاهره جلوی پای علی زانو میزنه و هم میشه باشه علی آقا ببینم باید زیپ کابشنشو میبن چیزی شده؟ نه مامان یا زکس در بس میگیره برم خونه علی کمی کبوچ نه اینجا چی شده؟ نه کنجورو مردم زشته دختر بچه که با مادرش راه میره بر میگرده و نگاهی به اونا میکنه تاهره و علی توی اتوبوس در راه برگشت به خونه هستن مامان. شغل چیه؟ ای خانودان مش هاوسورکر لیوان نیمواینا زور میگن اینا خانه‌دار مش کوک مش کوک داره تا 5000 دورشت دیگه هر دو سکوت میکنه کردن طاهره در خونه پشت میز ناهارخوری نشسته لیوانی چای برای خودش ریخته و شماره ای میگیره بله بفرمایید الو سلام ام ببخشید آقا من استخاره داشتم استخاره ده تا دوزه صبح خواهرم دو درسته من آخه من اون موقع دسترسی به تلفن نداشتم از آن موقع زنگ بزنی شاید قبل از نماز داشت اگه یادتون باشه من صبحم زنگ زدم آه. خدا حافظ الو. مدتی گذشته طاهره مقداری از چایشو خورده و سرشو روی دستش گذاشته و روی میز خوابیده سرش رو کمی جابجا جا میکنه صدای جیغ آرزو تاهره رو به خودش میاره ظاهراً بچه ها توی هموم سوسکی دیدن که تاهره سعی میکنه بکشدش بلاخره تاهره موفق میشه دنپایی دمپای بدهست عرق پیشونیش رو پاک میکنه تاهره داره فرسه یه ماهی رو پاک میکنه آرزو میای با جوزه کنیم نه حوصله ندارم بیا دیگه گفتم که دوست ندارم آرزو در یخچال رو باز میکنه آرزو جان بله مادر یه بسته غوره از تو فریزه بر من در بیار بطری آبی بر میداره و توی لیوان میریزه آرزو و در در میخواه دره و در فریزر رو باز میکنه وای، مامان چقدر فریزر رو پر کردی؟ ردیف پایین سمت راست فریزر پر از گوشت و سبزی و چیزایی دیگه است آها، پیداش کرده اه. میشه. اه. چرا میشه؟ یه خورده محکم بکش؟ تماشخ. خب اشکال نداره. همه رو با دقت جمع کن. آرزو بسته های گوشت رو یکی یکی از روی زمین داره. کاری که نداره. گوشت‌های خورشتی و چرخ کرده رو بذار یه طرف. سبزیجات رو بذار یه طرف دیگه. کدوته و بادمجان برای اینکه له نشه بذار روش. آرزو به مادرش نگاه میکنه و کارای رو که گفته انجام می‌ده. آرزو به کمک مادرش بادمجان سرخ می‌کنه. بادمجونی رو زیرو رو میکنه جون باید تلایی بشه اگه سیاهش بشه میشه مامان فردا بایه هرسی چی میخواید آبشی؟ حواسب باشه اینه نه. تاهره از جواب دادن تفریه میده آه موغنش میتره من که بزرشم سفاش میدن بیرون برام غذا بیاره بس میگه دیگه غذای بیرون خیلی بهتره داره اون یخچالو ببن من میخوایم یه چیزی بخورم اینقدر با اون کیک نگاه نکن اگه میخوای برای توخموق درست میکنم طاهره خام خامو با چاقو نصف میکنه الان توخموق درست ندارم علی سرشو از توی یخچال بیرون میاره و در رو باز میزره برو پسر طاهره تلفن رو بر میداره. قسم میدونی چیه اگه من بودای شدم یه دن یخچال میخورم تو اتاق خودم الو این سفارشان ما چی شد آقا محمد پور؟ درستگیری در دادم درست کردن در ببن جواب نمیده الو اینم اینجوری، این, این سفارش کم بدهی نمیاده آقا این شاگرد شما پس کی میاد تاهره چادر بر سر وارد مغازه میشه باش من من خب خطر. خطر. خطر. همون طرفم گفتم سم می‌خواستم مرد هم توی مغازه است بالاخره خوبه تازه متوجه مرد همسایه که بغل دستش ایستاده میشه یک کم زرشوبه ببخشید یکم زرشوبه و قاشق روغن اگر با آب جوشش اضافه کنید دیگه نمیشه مرد اینک به چشم میزنه و روی بسته ماکارونی رو دلید. آب جوش اول بریزی یعنی قاشو بس ما رو آبکشان یکم آب, آب سردوش بگیره چیز دیدی میلی میسیر می آوردن مرد دفترچه خودخوری از جیبش در میاره و یادداشت میکنه تاهره از کیفش یه تراول در میاره این چایان چای خوبی نیستن چای قرمز ایرانیان هستن اونا خیلی بهتره. دزدن میکشن ولی عطرشون و رنگشون خیلی بهتره. خیلی معمو اجازه که برداشت میبره تا عوض کنه. پای در یعنی ما کن. بابا نذاره. اجازه بده هر از و که اومده بود درست کرده و بگی خودش میدونه سش مالش نمیدم. باشه شما نه نه حساب کن. شاید چند وقتی تاهره ترابل رو روی میز آقای دریانی میزن تاهره کیسه خرید در دست، از پیاده رو وارد خیابان پرتردد میشه از بین ماشینا رو میشه غروب شد تاهره وارد خونه میشه همسایه هنوز توی پارکینگ مشغول تدارک عروسی هم آرهی، ست نواری دادی آبا میتی بلشی؟ ناشت آبای بست دردن شد اه، تاهره جان برگونه چه خوشو بسه ما اینجا چیکار میکنیم؟ بالا دلم گرفته بود گفتم میام پایین. چسناد گفتم برام بالا. ببینم برات آوردم. بچه‌ها با آمپلیفایر ور میرن و صداشو کم و زیاد میکنن. زن همسایه وارد آسانسور میشه. به نظر میاد وا ترس دکمه آسانسور رو میزنه. بله واقعا ترسیده. تو هله تو طبقه 4 که میای. باشه. منم کمکی بهجد خانم بچهار دسته ناس بایدش کمک کنم خیلی زود convicator... با همه خودمانش دادیه زن سرشو پایین میندازه و زیر چشمین نگاهی به تاهره میکنه ابروتم که چقدر به هم ریخه شویقه یه دستی بهش بزن آخه شکر خدافظ میبینم از بابا اراستی تا من دو گدیگامو برات میفرستم نارو بزار تو به جوشه چند بخوره خوره خدافز زن میره و در آسانسور رو میبنده تاهره توی فکره بر میگرده و خودش توی آینه نگاه میکنه و دستی به ابرواش میکشه آسانسور میسته و تاهره پیاده میشه در خونهشون باز و بوی سوختگی میاد. تلویزیونم روشنه تاهره نگران شده کفششو رو در میاره و چادرش رو بر میگنه آرزو نه نیست توی آشپسخونه میده کیسه خرید رو روی میز و چادرش روی صندلی رو با درمی جوناس نه علی علی اون اجاق رو روشن میکنه وزیر مایتابه رو خاموش مایتاب داغه با دستگیر اون رو بر و توی زرفشویی میزنه سریع پرده آشپسخونه رو کنار میزنه و دریچه رو باز میکنه چادرش رو بر میداره و توی هوا میچر تا بوی سوختگی بونه آرزو با سه دختر دیگه میگه چی شده کدوم گوری بودی خ سوخته گفتم کجا بودی؟ علی کجاست؟ با توم بالا پ بچه شما بریم من بعد سه دختر دیگه که کاغذ رنگی دستشونه میاد. پشت اون چه غلطی میکنه؟ داره با جای محمد سوپ در من بازی میکنه خیلی بی ارزه آرزو خیلی علی علی پاپا دوتا دو بالا که بگم بچه ها بیان پایی در عروسی کار درستی دارست کنیم تاهله چادر شده در کابینتو بازمی روزنامه در میاد روزنامه رو با عصبانیت باز انقدر اینقدر سپارش کردم دختر دست با فی آرزو هیچ چی با کفگیری با جون ها رو توی روزانه خالی میکن آرزو ناراحت به اتاقش میده در او چقدر محکم میبندی؟ یواش با تو فهمیدی؟ تاهره مستعصل و عصبی نمیدونه چی کار کنه دستی به پیشونیش میکشه تاهره روی پشت بوم میره به دنبال علی میگرده علی با دوستش پشت کولر نشستن و کنار جوجه ها کیک میخونن دوست علی که متوجه تاهر شده بلند میشه میسته ولی علی حواسش به خوردن روی شونه علی میزنه. علی تازه متوجه مادرش میشه که داره به اون چشم قره میره سلام خدا رفتیم بر سمه همسوی ها باشیده. گفتن کیک با سما نیست مگه نه؟ دو از ه... در همه عمت... اه... همسوی این کیک ب... و وضعی نبود علی با قاشق تکهی کیک جدا میکنه و؟ مامان بیا بخور. تاهره عصبی رو بر میگردونه. نمی شب شده تاهره چادر نماز بر سر پای سجاده تک و تنها نشسته و گوشی سیار تلفن دستشه تاهره سرش رو به دستش تکیه داده نشسته و به گوشه خیره شده گوشی رو قطع میکنه. کلیدهای کلید ساخته شده رو توی یک حلقه میندازه و کنار بشقاب کیکی توی سینه می لیوان شیری هم هست دست کلید دیگه درست میکنه. تاهره با سینی کیک وارد اتاق آرزو که داره مشق می نویسه میشه. سینی رو کنار آرزو می و دست روی شونش آرزو خانم برات کیک و شیر وردم بخور تا شما زش چه عطر خوش بویی هفوشناسی هم که گفته تا آخر هفته بارندگی نمی شه. فقط ممکنه یکم هوا سرد بشه می بارون قرمز رو بده دهن؟ بیتونم تو اردو بخوشم؟ خب آره اون که برای من تنگ شده میشه زیر شجاکت بپوشید تا اندازت بشه اصلا میشه که عربالشم بست خب آره این رو برای تو ساختن؟ که اگه وقت میای من نیستم پشت در نمونی چه خوشگله عروسکی به دست کلید آویزونه تاهره سر آرزو رو میبوسه تاهره با سینیه دیگه ای که قطعه کهی که توی برشقاب هست و لیوان شیری کنار اونه به اتاق علی میره چراغ اتاق روشن میکن خاموش کن. چراغو خاموش میکنه علی آهسته و کورمال کورمال به طرف تخت علی میره علی زیر تخته ولی پاهاش بیرونه و اونا رو تکون میده. زیر تخت چی میکنی؟ کار دارم جوجه هم توی کارتون سرو صدا میکنه برات کهی کشی رو بردم. کجا؟ اینجا به سختی زیر تخت میرم آی آخه زیر چی کار میکنی؟ محروف صدامونو میشنود بگیر چیکار کار کنم؟ بگیر هر تو علی باشه؟ باشه؟ چیده باشه علی توفنگ به مادرش میده خودش چرا خوبه دستشه نمیخوام کدومو بزنم علی نور بزن چرا قوه رو روی عروسکی یه سرباز میدازه خوبش ما سه دو یک حمله سرباز میرفتی آفرین مامان چه خوب زنی خب آره اینکه چیزی نیست من با توفنگ راست, راست کار کردم راست میگی آه. وقتی که بچه بودیم تا به میرفتیم یه ایلاق روستا دائم شکارچی بود بعض وقتا توفنگشون میداد ما تیر در میکردیم راست خب آره دیگه تازه فقط اسفش به من اجازه میداد سوارشم بقیه پسرای فامیلم فقط میتونستن سوار یابو اولا قادره میشن پس بابا سوارش چیلو شد؟ تاهره ناراحت شده بابا. و جوابی نداره بابا اون موقع کجا آه آه آه تازه داشته فازی میکردی از تخت خارج میشه تاهره زوپز و از روی بر میده. حسابی به فکر رفت تاهره و آرزو و علی توی آشپزخونه دور میز غذا میخواه ماما نمک کم تر بریجوری چشمات زرار داره ماما میشه بعد از شام یه صبرم بالا خبارم صفرخت و چیندنی نه خیرم الان دیر وقته باید بخوابی فردا بری برد مگر اما اما بشین سرجات به تو ربکی نداره بچه ماما میبینی تو همه کاری من دخالت میکنه چی گفتی؟ هیچی با شما نبود سالاد بخور ماما ده به انگلیسی چی میشه؟ فش میکنم میشه موس موس <صحيح> علی تعجب کرد حموف میشه اه هی بسار صفر چی میگه فلش مامادر جان این بچه نه خیرم بچه نیستم علی آقا 10 بار بهت گفتم سر قضا با نه هم دیگه دعوا نکن من حتی دارم بخواد بهت میگم موس علی بلند میشو در بوش آرزو میگه موس علی آقا بعد از سر شامت علی من سیرم به کی زنگ بزنی؟ شرکت سوز خونم سکسی سیاه آرزو بوشش رو گرفته تا صدای علیه نشنبه انکبوت تاهره نمیدونه چی کار کنه فقط لبخند تلخی میزنه تاهره و آرزو به هم نگاه میکنن و هر دون میخنن به اینکه بری بالا برو کولت وردار بیار وسال اردوت رو جمع کن بعدا جمع نکن بردباری میشه گوشو بدیم بابا تاهره از شنیدن مستن. اسم خانم بردباری اخماش توی هم بریم دقت میکنه ببینه علی چی میکنی. از انگلیسی چی میشه چه گفتی؟ ماف دست این میشه ظرف سالا با عصبانیت توی زرفشوی خالی میکنه ظرف از دستش میافته. دستاش دستاش میلرزه تاهره کاسه آب برای دو دوجی توی جعبه میذاره و با پارچه‌ای روی جعبه اونا رو میپوشونه. علی با عینک روی تختش خوابیده. طاهره عینک از روی چشم علی برمی‌داره. لحافش رو مرتب میکنه. ماشین اسباب بازی شو که روی تخت برمیداره و روی تاخچه میذاره. میخواد از اتاق خارج بشه که جان آرزو عزیزم. مامان یکی از روزه هم گم شده پیدا میشه دا خوب عزیزم تاهره زرف میشوره آرزو کلاهی لبدار بر سر میاد و به مادرش نگاه میده تاهره ابتدا متوجه نمیشه ولی سنگینی نگاهی رو حس میکنه برمیگرده و آرزو رو میبینه تو که اومدی؟ اون کلا چیه سرت؟ قشنگه رکشانه جیم برم درست کرده آره خیلی قشنگه ماما چه با سما قشنگه میخونی؟ خیلی صدا قشنگه دخترام بخوا. برو بخواب. فردا صبح مدرسه داری نمیتونه بیدار بشه. هیچ چیز بگه. ایشان میشاید روی تخت شما بخوابه. تا وقتی که بابا بیاد. باشه. باشه. برو با بخواب. آرزو روی تخت پدر و مادرش دراز کشیده. وقتی چه خونه مک. طاهره روی تخت میشینه و پتو روی آرزو میکشه بگی بخواب بابا حالا میاد؟ آم، به چی میخوندی؟ به چی؟ بوده گو دیگه به خودم افتادن خونه خیلی بزرگ بود اتاق اتاق بود. همه اتاق هم راه داشت وقتی که برمون مهمون میومد پیچار دایگ مجروب تمام رخت و خوابه راست و پس تو یکی یکی بچین احمد جا بعد من و خالتم دوزدکی با همدیگه رفتیم تو اتاق و تو تمام رخت و خوابه میگرفتیم میخواید خونه اکیفت خیلی کیف میدون تا اینکه سرکله مادر جانو پیدا میشد میمد با همیستاد میگفت اتپارچاسی اتپارچاسی علی چی؟ یعنی چشاتو ببند بگیر به خواب که تشواره تاهره دستی بر سر آرزو میکشه پاسی از شب گذشته تاهره پای گاز ایستاده و غذا درست میکنه بیگودیا هم توی آب جوشه گردنش درد میکنه کمی اونو چپو راست میکنه پای پنجره آشپسخونه میاد. روی بالکن خونه مرد همسایه گربهی کشو قوس میاد مرد همسایه هم مشغول شام خوردنه تاهره نگاهی میکنه و برمیگرده و به تلویزیون نگاه میکنه. دوباره پای پنجره میاد. مرد همسایه گربه رو بغل میکنه و توی خونه میبره و اونو روی میز غذا میذاره. تاهره به زنگ تلفن توجهی نمیکنه تاهره لبخندی میزنه تلفن روی پیغامگیر میره و ل سلام جان. کاردار این حالا شما شان بیا اینجا یه خستگی در کن امیر که هنوز نیمده موبایلش هم جواب نمیده یخ <تصفيق> چسا <تصفيق> قبلمه ها رو با دستگیره دم در میبره مرد همسایه رو میبینه سریع دو سرش رو جلو میکشه اومدم رفسان اجه سلام علیکم حال شما خوبه خوبی شما ببخشید من اومدم دنبال بیگودیا بله خانم رفسان خانم بله بله, بله, بله. معذرت میخوام من اینجا خیلی شلوغ شردم من به شما قول میدم که امروز وسایل رو جمع بکنم ببخشید لط میکنید تذکیره ها رو خیلی ممنون ببخشید خواهش میکنم خودینو یادتار همسر رکسان ها دستگیره ها رو میگیره و میره تاهره توی کمود به دنبال لباسیه پیدا میکنه لباسی آبی رنگ با چوب لباسیش اونو بر میداره و جلوی خودش میگیره توی آینه نگاه میکنه رازی نیست لباسی دیگه توسیه بی آستین. اونم یه لباس سفید نه بلوزی بنفش با رو سریه گلدار خوبه راضی کننده است تاهره آرزوی رو به اتاقش میاره تا بخوابونه. پتوشو روش میکشه و میخواد از اتاق خارج بشه داره میاد. لحظه میمونه بر میگن شیشه عطر آرزو رو بر میداره و به خودش عطر میزن تاهره توی اتاقشون میز میستوالد نشسته و بی سبرانه منتظر اومدن امیر همسرشی چهارپایه میذاره و در طبقه بالای کمد دیواری به دنبال چیزی پیداش میکنه بستر رو, رو روی تخت پرت میکنه روی تختیه گلداری رو, رو روی تخت پهن میکنه در چمدونش رو باز میکنه لابلای لباس ها دنبال چیزی. سر رسید برق میزنه و عکسی پیدا میکنه از پای چمدون بلند میشه عکس و گوشه میز فرار خرار می. خودش هم پای میز میشینه و آرایش مختصری میکنه تا همسرش از راه برسه پیرهن گلبهیو که خریده بود توی کاغذ کادوی قرمز رنگی با ترهایی از قلب میذاره یه یادداشتم روی پیرهن میذاره و چسب میذاره لحظه میمونه چسب باز میکنه یادداشت رو بر کاغذ کادو رو دوباره چسب میزنه. طاهره روی مبل نشسته و خودشو با تلویزیون سرگرم کرده. امیر هنوز نیومده. با کنترل تلویزیون رو خاموش میکنه نگاهی به دورو بر میکنه. نگاهی به لوستر اتاق و چراغ رو خاموش می‌کنه. در تاریکی به لوستر نگاهی میکنه و به صدای بوغ ماشینا گوش میده. چراغ روشن میکنه. نمیدونه چطور باید وقتشو بگذرونه. باز هم به لوستر نگاهی میکنه و خاموشش میکنه. روشن میکنه. عشق توی چشماش حلقه زده. لباش از شدت عصبیت میلرزه. بغض کرده. اما سعی میکنه کنه خودشو کنترل کنه. ولی قطره اشکی از گونهش به پایین میگلده کمی از رو با خودش به پایین میاره رو پاک میکنه چشمی دیگرش و صورتش کمی سیاه میشه به دستشوی میره و صورتشو میشوره ما فقط سایشو میره بالاخره امیر هم از راه میرسه تاهره سریع از دستشوی بیرون میاره و نگاه میکنه حسابی گریه کرده چشماش پوف کرده تمام هم پاک شده صورتش رو با حول خشک میکنه تاهره ناراحت به استقبال امیر میاد اما میخواد ظاهرش خوشحال باشه سلام خزمان باشیم چطوریم امیر نقشه و پوشه دستشه و یک کاور کت باشه مبارکه. کوچربا رو به تاهره میده. دیدی آخرش گذاشتن گردن و ایشون میگم دومین کوچلوا رو زندگی من مصرف میکنه. امیر بو میکشه. چی میاد؟ طاهره لبخند میاد. چیزی سوخته؟ طاهره تو هم میره. فکر میکرد بوی عطر رو میگه. طاهره کوچربا رو توی اتاق میبره. اون رو روی تخت میذاره. پیرهن فادوی رو بر میداره و زیر تخت پنهان میکنه. زیبه رو باز میکنه و کوچروا رو نگاه میکنه که امیر میاد. تاهره از اتاق بیرون اومده و توی آشپزخونه میاد. امیر لباسش رو عوض کرد. نه. نه. نه جوشتن جیرانم. شام حاضره. می تو شام نخوردی؟ مگه تو خوردی؟ مو؟ نه. سلیقه کیه؟ اصغر؟ کی اصغر؟ آرزو بیدار شده و دم پله های اتاقش ایستده با با اومدی دختر من چرا این موقع شب بیداره هنوز که صبح نشده دختر کوچولو. با با به اونا نگاه با ادامه با آرزو از پله بالا میرن و به اتاق آرزو میرن تاهر و امیر سر میز شام نشستن و شام میخورن قلیه ماهیه چرا به اینجا خالی میخوری؟ خورش میرن نکش نکش نکش او زیاده آقا مو که ازی منوها سرده نمیوردم گفتون چی میگه سفارش داده؟ تو یه قضایی بیاریم که بخار بکن بخار بکن خب ما قضای بخار می‌کنیم. یه قضایی وردن. ب هر پرسه دو نفر هم می‌کرد با بخار نمی‌شد دیگه بخار بود همینجور بخار آقا همه ملل به ما نگاه امیر کمی جا خورده طاهره متوجه حالت اون شده مشخصه اینا تا این موقع دارن کار می‌کنند شوخی کردن طاهره به زور می‌خنده این موقعش رو دست امیر از پشت میز بلند میشه میره و موبایلشو میاره ببین امیر میخوام یه چند میخوام یه چیزی بر بگم قرار ما شراکت بیر نمیدونیم اینو چی میکنم توی شرکت این به نام خودش ثبت کنه چیه اگه سیری مجبور نیستی غذا بخوری آره امشب سبکتران بخورم بهتره بری کولاک بود خیلی غلی باری بود تندش کرده بودی کولاک بود ما پلی ماهی میخوام ما پلی ماهی میخوام چشمه چیه چیه پول آرزو بچم فرقی نداره نه نشود امروز از بانک پول بگیرم خوب شد گفتی وقت نری بانکام رمز حساب مشترکمون رو عوض کنیم پول آرزو رو هم آرز با چک بنویسم چرا بنویسم؟ چرتو تو ناراحت و عصبی از پشته میز میشه ظرف سالات رو توی یخچال میزه تاهره امروز چه امیر چک بیسه ده دهی دهه امیر لحظه‌ای میمونه تاهره منتظره در مورد تولدش حرفی بزنه ولی چه خواه بکنه انا؟ چه تنمون بایی سر صداشون؟ صداهای طبقه, طبقه والا رو میگه تاهره نامید در یخچال می‌بنده و گوشی تلفن رو برده رو یه واقع زنگ روزه الو <سؤال> سلام بهچت خانم ببخشی میخواستم با بهچت خانم صحبت کنم او یه شب میخواستم حروسی بگم کدشت خانم تا بپوش ببینم بهت میاد یا نه؟ این پوشم بر بجدن هم امونه امیر به اتاق میره تا کدشت خانم رو بپوشیم علو میخواستم با بهشت خانم صحبت کنم من همسای طبقه پایینشون هستم بلده. امیر پشت در کمود لباس عوض میکنه و تاهره روی تخت نشسته و به اون کمک نمیدونم چی کامو خوابه کنی نمیدونم چی فیلم رو ده. نمید این تمام کار شرکت ها شما برای رو هم هم نداره ولی حساب کتاب داشته باشه بدونه بفهمه. فکر نکنه علیکی قرآن فردا اگر رفتم شرکت دیدم اسمم زیره تر نیستم اصلا اون موقع ما میدونم این دوسته روز ما نران خطازه قدرم میدونم خودش باده میکنم یه دنبار این که بدهش خودشارو باش حرف نمیزم چی بش بعضی چیزا وقتی تو بگی دیگه فایده نداره قبول داریم جلوی آینه خودشو نگاه میگن آره اصلا ملم نمیام. خیلی رسمیه. این, این مدیر دولتی ها شدن. فقط من به خاطر رنگ پیره نشه. یهو متوجه عکس کنار آینه آه. میشه. آخه این عکس کجاست؟ مارچیه؟ ما نازن سفرمون. ببین، عکس جلوی زریه امام رضا است. 5000 کامش تلفن نداشتیم. درست 5000 ماشکی دادیم برای این. درغشم هم هر دادیم برای مصافخونه. چقدر جواب بدیم. اونجا رو به حرم مصافخونه خیلی گرم بود. من گفتم نگیریم امیر تو گفتی اشکال نداره مگه آدم چند بار میاد موه از داره؟ خراب کردن. نا پیچه موه هایی خب راست میگه چون موه کم شده؟ دیگه برامون پول نمونده که شام بخوریم اومدن یکی یکی در اتاقه رو زادن به همه قفس غذای حضرتی دادن تو گفتی این یه موجزه است با گفتنم آره یاد تا غذا چی بود؟ <متحدث> امیر یهو چیزی یادش اومده داروی تقبیتی مو به موهاش میزنه و با انگوش روی پوست سرش فشار میشه یادست اسما ببین امیر خیلی حواسش به حرفای تاهره نیست به کار خودش مشغوله اگه قرار داده رو بتونیم ببندیم ممکنه بتونیم کنمون رو عوض کنیم حتی شاید بتونیم بخریم چطوره؟ تاهره سر به زیر میلزه خونه های قدیمی آدم های قد امیر عینکش رو به چشمش می‌زنه. می فا. بچه‌ها آواز وزوز کردن. نه. فرصت مون رو می خوره. طاهر ناراحت بلند میشه. آره مون رو مرتب می‌خوره. من میرم بعد چای درس. استادنا بره ایت بهم نمیاد به نظرت خوبه؟ تاهره اما جوابی نمیده تاهره تهمونده غذاهارو رو جمع میکنه صدای جوجه لحظه توجه تاهره رو جلب میکنه اما به کارش ادامه میده تاهره دوتا چایی میریزه سر چای ها رو با آب جوش پر میکنه توی سینی چای ظرف پولکیو میذاره و به اتاق میره امیر خوابی نه تا فقط سکوت میکن تا تلفنی با برادرش صحبت میکن سلام قسم جم را افتادی میایی دنباله باشه منتظرم خداحافظ فیران خداحافظ استکان‌های چای رو توی زفشوی خالی می‌کنه. کنه قوری همه چکی که امیر نوشتر رو بر و روی یخچال با یک سیب آهن رو بایی نصب می‌کنه. کنه شب. در پشت بون بازه باد میاد و ملافه های سفید و تگون می‌ده. در پشت بون به هم می روی پشت بونه پالتو پوشیده و باد رو سریشو تکرم میده خیره به نقطه نگاه میکنه و ملافه ها در باد تکرم میخونه بارش برف شروع میشه باد میوزه گیره ها رو از روی بند بر میداره و ملافه ها رو جمع میکنه باد شدیدتر شده و کار سخته تاهره آهسته توی اتاق میاد و آروم کادر رو از زیر تخت بر میداره. اونو روی میز توالت میذاره، چمدونش رو بر میداره و از اتاق خارج میشه. چادرش رو سرش انداخته و منتظر اومدن قاسمه. لاله شیشهی روی میز رو بر میداره. خاک گرفته و لک شده. تمیزش میکنه. باز هم صدای جوجه اونو متوجه خودش میکنه. پنجره بازه و برف میاد به دنبال صدا بلند میشه چادرشو بر میداره روی زمین میشینه و میز میزو نگاه میکنه چهار دست و حرکت میکنه اما چیزی پیدا نکرده دمه در میره از چشمی نگاه میکنه چیزی نمیبینه ترسی که کیه؟ آروم درو باز میکنه بهجت خانم نگران پشت در ایستاده سلام بهجت خانم چیزی شده؟ دلم خیلی شور میزد همش میترسدم خوابیده باشی تا از بیرون اومدی؟ به خاطر پالتوی تنش میگه با من کاری داشتی؟ خوابم نمیبری اگه میشه یه تکه کپا بریم بالا من این شبیه کمالم خوب نیست اگه میشه بر فردا خانمی فردا دیر میشه الهی من قرب میدبرم بیا یه تو کپا بریم بالا یه دقیق بهجت خانم روی تاهره رو نمیدونم نمیدونم چی کار کنم با هم از پله ها بالا میرن و تاهره در خونه رو آروم باز میرن وارد خونه بهجت خانم روشه مهمون ها کف حال خابیدن مهمون تو نیست. همسرش میگه که خوابیده. شاهد همین الان نمیزنن. بیا, بیا, بیریم. بیا بیریم وارد اتاق عقد نشی. منش بهجت خانم پای سفره عقد میشینه. دو ساعت نشستم پای سفره برق اینه با خودم حرف میزنم حرف میزنم دلم هزار راه میریم پسرم پسر سری خوبیه ها بچه رو میخوان ببرن شهرستان نگاشگاه طفل معصوم خابیده بچه هست دست خودم نیست می. تو که خود مادری میدونی اله قرونت برم یه دخترشو میگه که کنار سفره عقد دراز کشید و بخواه بده <تصحیح> هم کنار بهجت خانم میشینه قرآنی رو میبوزه و به تاهره میگه چی کارش کنم؟ بازش کن. من؟ چرا من بهجت خانم؟ تاهره خانم جم از صبح هرچی فکر کردم غیر خودت هیچ کسی یه به نصرم نهیم دلم میخواد یه سفید بخ قرآن بچه باز کنه که الهی به حق همه قرآن اونم سفید بخ بشه من نمیتونم بهجت خانم بهجت خانم دستی بر دست طاهره میکشه. خدا دل منو میکشه تاهره قرآن رو در بخل میکنی مردده که چی کار کنه انگار در فکرش داره زندگیشو مرور میکنه نگاهی به دختر تازه عروس میندازه نگاهی به قرآن میکنه و باز هم نگاهی به دختر قرآن رو بر پیشونی میذاره در دل نیت میکنه و قرآن رو باز میکنه خودش هم حال خوشی نداره میخونه بغز کرده بد نه چی نوشته چیزای خوب چیزای خیلی خوب خدا رو تاهره آرام آرام از پله ها پایی میاد و دستش رو روی نرده کنار پله می‌کشه. به در خونهشون رسیده داخل خونه میره و کنار پنجره می‌شینه. برف سفید هنوز می طاهره خیلی منقلبه نگاهی به امیر که توی اتاق خوابیده میندازه داره جانم کجایی؟ من همینجام لبخنده کوچکی بر لب کف حال دراز میکشه به همین ساییم عزیزان شنونده فیلم سینمایی به همین سادگی رو با همدیگه شنیدیم امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه حتما با برنامه خودتون در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو بفرمایید انتقادات خودتون هم همچنین تا ما بتونیم در کارمون بهتر و بهتر بشیم تا بتونیم پاسخگوی شما عزیزان باشیم خدمت شما عوامل برنامه رو معرفی میکنم صدا بردار بسیار خوب برنامه جناب آقای علی حاجی نوروزی که زحمت بسیاری در این برنامه میکشند و تهیه کننده محترم فرشاد آذرنیا و بنده هم که در خدمت شما بودم بهرام سروری نژاد تا برنامه دیگه که امید دارم بتونم در خدمت شما باشم همه شما رو به خدا میسپارم خدا نگهدار